بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بی نهایت بارش بگو پناه می به پروردگار از شر آنچه آفیده است و از شره تاریکی هنگامی که گسترش می آبند از شر آنانی که در گریه ها و از شر هر حاسدی چون حسد می